جلله محطرری ها شروسک مخملی باف به دور نوسان و داسانات از دلیوارد سکلیکی موجب شناخته نمیشه بدلی جاششه قطلب پبه گیر جون بغلی ها تو گلی شهرم روش نگاه رو نرسیده زودی ادام نمیده مجال بدا پور زنات هر و لرز ووو بخت تو جوش تخشو نگاه ده همی کرده هم و ادام که که به همین زودی چک دهه معادام این عروسکه کهنه سگ به زاج جب گیریبی معنی یا بچه بچه مردات هم یاره ضر مشرافات تو نقزه بال فقط جاش تو فیلم راافتات ولی خوشگل مخمل لتی بار رفیت با تارو پوده له چشاتو باکن ببین عروسکم عروس مرگ تمام شنج سرا با شرب شرابش کونه شالاتان فکر بالا سرته اون موقع که آرزود مرگ مرگه عروسک خیمه شفت بیارش شر مرگ بلکا چف کردم هم من پیه در آخرت عروسک خیمه شب بیارش شر مرگ پلکا موچف کردم هم من به در آخرت بودم دخترکی سالایی تقدیم به دخترک بابایی سیلی بخور ناچاری عوق خون و نطوه جون آقوش خونین مادرت شصافت گهوار رودتین قامتت مقیاس رخت تن تن الی ثابت قصر من طلب رمال صدق سر ریز. رمغ هست سر اشکال ترسناک سبب تنز ترخ جاتره عروسک هم افقود از سر اومده بالا سرت میکنه بارورت نشده باورت همیشه با منه اون خود ذاتم نزدیک به شاهرگه خوبی و اثرش زیادی کرد خیانت به قصد جونم افتاده دنبالم نقش زدم کشیدمش مفقود بود یافتمش کشیدنش دیدمش دویدم دویدم, دویدم تل آسایش خاص منو پریدم عروسک خیمه شب بیارش شر مرد دل کامو چف کردم روحم من به در آخرت عروسا که خیمه شب بیارش شر مرگ دل کامو چف کردم روحم من به در آخرت بودم